سانتیوگو شیلی 14 جویه 1985 هیلدای عزیزم این نامه وقتی به دستت میرسه که من دیگه زنده نیستم و وکیلم طبق وصیت من اون رو به دست تو میرسونه من رو ببخش بخش که تمام این سالها برای ارتباط با تو هیچ تلاشی نکردم و هیچ تماسی باهات نگرفتم این کار فقط به خاطر خودت و امنیت تو بود برای یک آدم فراری تحت تعقیب. هیچ راهی برای نام فرستادن به خونه و عزیزانش وجود نداره چون شکارچی دائم مراقب اون خونه هست. حتما میدونی پروندهی که علیه من تنظیم کردن هر چقدر هم که زمان بگذره کنار گذاشته نمیشه. اونایی که من رو متهم کردن از تقریبم دست بر نمیدارن. همونطور که میدونی راحت میتونن پیدام کنن. من رو به که در این مدت باها تماس نگرفتم. اما همیشه از طریق و مجموعی اونها در آلمان پیگیر احوالت بودم تا مطمئن باشم حالت خوبه. همراه این نامه دفترچه خاطراتم هم رو هم برات میفرستم. مدتی که در کشور مصر زندگی می این خاطرات رو نوشتم. من در اون کشور قطعه ای از وجودم رو جا گذاشتم. متاسفانه مدتی هست که بیماری سختی گرفتم و دیگه نتونستم نوشتن خاطراتم رو ادامه بدم. سعی می کنم اینجا خلاصه ای از باقی مانده داستان زندگیم رو برات بنویسم. بعد از به دنیا اومدن دخترم لیلی، مدت زیادی در مصر نموندم. کمال ازدودین همانطور که قبلا قرار گذاشته بودیم، کمکم کرد بلیط سفر به شهر سانتیاگوی شیلی رو بگیرم. چند هفته بعد از زایمان به کشوری سفر کردم که تبدیل به وطن من شده تا روزی که بمیرم. نمیدونم کمال فقط میخواست به قولش عمل کنه یا اینکه هر هرچی زودتر از دست من خلاص بشه اما در هر صورت تا جایی که در توانش بود و با کمک رابطه‌ها و آشناهایی که در دولت داشت کمک کرد من به راحتی از کشورش خارج بشم از مصر رفتم خواهر عزیزم و دخترم رو جا گذاشتم دختری که آرزو داشتم تا موقعی مرگم کنارم باشه دخترم رو بسختی و در حالی که خونریزی شدیدی داشتم و رو به مرگ بودم به دنیا آوردم خونریزی من اونقدر شدید بود که دکترها چاره جز خارج کردن رحم نداشتن و با این کار همون یه ذره امید دوباره مادر شدن رو هم از من گرفتن. شاید بپرسی و حق هم داری که چرا تا حالا برات نامه ننوشتم و الان بعد بعد این همه وقت که دیگه عمرم داره تمام میشه بهتنامه نامه میدم و باهات حرف میزنم. خواهر عزیزم، حتی یک روز هم فراموشت نکردم. همیشه به یادت بودم. تو تنها کسی هستی که برام مونده. برات نامه می نویسم تا چیزهایی که مانع ارتباط من و تو شدن رو برات توضیح بدم تا بهت بگم تنها دلیل اینکه برات تا حالا نامه ننوشتم این بود که نمیخواستم به خاطر نسبتی که با من داشتی اذیت بشی ما اینجوری آموزش دیده بودیم و تعهد دادیم نمیتونستم اجازه بدم تو آسیب ببینی اودسا از ما خواسته بود به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی با دوستان و نزدیکانمون تماس نگیریم شون ممکن بود تعقیب کنندگان ما از طریق بستگان ما بتونن پیدا مون کنن. دوستانی که به من کمک کردن فرار کنم از من اینها رو خواسته بودن و من بیچون و چرا حرفشون رو قبول کردم. الان که به گذشته نگاه می کنم و به اون همه سختی که به من گذشت می بینم تعهد هم تمام زندگیم رو نابود کردن. تعهد به اودسا باعث شده بود هر بار که, که هر بار با شخص آشنایی روبرو می شدم یا کسی که میشناختم و همکارم بود رو میدیدم بلافاصله ازش دور میشدم و اون قولم به کمال و ایمان و تعهدم به اونها به من اجازه هیچ تلاشی برای ارتباط و تماس با دخترم رو نمیداد حتی نمیتونستم خبری از حال دخترم بگیرم شیرخوار بود که ازش جدا شدم نمیدونست چقدر دوستش داشتم و چطور شد که رهاش کردم میدونی تنز تلخ داستان کجاست ای تنها یک بار من به تعهدم در قبال کارم عمل نکردم و همون قضیه باعث شد متهم بشم. همسایه معیر رو یادته؟ وظیفه من بود که گزارشش رو بدم و داشتم این کار رو هم میکردم. اما اون روز وقتی وارد دفتر آیشمن شدم تا تصمیم همسایه یهودیمون برای فرار رو بهش اطلاع بدم به لکنت افتادم و نتونستم خانواده ی اونها رو لو بدم. زبونم بند اومد. قدرتش رو نداشتم. نخواستم من دلیل گیر افتادن و آواره شدن اون و خانوادهش باشم و عجیبتر اینکه من فراری شدم و زندگیم به یک فرار بزرگ تبدیل شد. من فقط منشی ساده آیشمن بودم. ساعت قرار ملاقاتهاش رو تنظیم می کردم و پرونده های دفترش رو مرتب می کردم و می سرجاش. سر جاش. درسته من پیش اون کار می کردم و احساس افتخار هم داشتم. خب هر دختر جوانی که برای یه آدم مهم و صاحب منصب کار کنه چون احساسی بهش داره اینطور نیست من راجب جرم هایی که اون مرتکب شده چیزی نمیدونستم نباید هم میدونستم مگه مردم عادی آلمان قبل از شکست ما در جنگ از کارهای اونا خبر داشتن الان که دیگه در بستر مرگ افتادم هیچ دلیلی پیدا نمیکنم که چرا زندگیم به اینجا رسیده جز اینکه یه نفر داده همین که من در کنار آیشمن بودم برای مجرم بودنم کافیه. کشور شیلی مردم خوب و خونگ می داره با پوست‌های آفتاب سوخته. اینجا زمان به کندی انگار که هیچ ارزشی نداره. مردم اینجا مثل بیشتر مردم دنیا اینطور که من تصور می‌کنم دنبال زندگی بهتری هستند و همیشه راه های مختلفی رو برای رسیدن به هدفشون امتحان میکنن. اینجا هم مثل همه جای دنیا، این نقش پررنگی در زندگی مردم داره و عشق به وطن تو وجودشون موج میزنه. چیزی که برای من عجیبه اینه که اونها به قدری به عقاید دینی خودشون پایبندن که انگار مشتاق هستن به گذشته سفر کنن. چون فکر میکنن در گذشته که ایمان و اعتقاداتشون قوی تر بوده، دنیای بهتر و قشنگ تری داشتن. اما از طرف دیگه اکثر همین مردم به شدت دوست دارن از کشورشون مهاجرت کنن. و به جایی برن که دنیا و تکنولوژی پیشرفت بیشتری داشته تا بتونن زندگی راحت و مرفه تری رو تجربه کنن همین باعث شده اونها احساس کنن بین زمان و مکان گیر افتادن و اولی مانع پیشرفت دومی میشه یعنی زمان به مکان اجازه رشد و ترقی نمیده مردم شیلی مثل همه آدما از تاریخ درس نمیگیرن و رویاهاشون رو در تصاویر رهبران خودشون نمیبینن رهبرانی که با لبخند مردمشون رو فریب میدن و روزی که به قدرت میرسن دیگه خبری از اون لبخند نیست تازه بعد از اون شروع به دستگیری مخالفانشون میکنن این کاری هست که پینوشه در طول سالها با مردم این کشور کرده میدونی هیلدا اونایی که این طاغوت ها رو به قدرت میرسونن رهبران کشورهایی هستن که خودشون رو آزاد مینامند یه دیکتاتور رو به قدرت میرسونن و ازش حمایت میکنن با وجود اینکه میدونن مجرمه تا وقتی که به اهدافشون بررسن، ازش حمایت میکنن و بعد از اینکه دورش تموم شد و دیگه نیازی بهش نداشتن کنارش میذارن موقع رفتنش هم هیچ کس چیزی ازش به یاد نمیاره غیر از عیب و نقص هاش چون همه اون کسانی رو که مدح و رو میگفتن از قبل محو کردن. درست مثل پیشوا نصرهای امروز فقط جرم هایی که اون مرتکب شده رو میشنونن و درباره اون چیزی جز زشتی و جنایت و بدی نمیدونن کسی از این تاریخ نویس ها نمیپرسه پس چرا ما از رهبرمون راضی بودیم و چرا از اینکه اون رهبرمون بود خوشحال بودیم هیچ کسی این رو به یاد نمیاره که اون میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کرد بیکاری که مردم ما رو از پا درآورده بود ریشه‌کن کرد مورخان درباره مبارزش با فساد و توجه اون به وضعیت بهداشت و درمان چیزی نمی نویسن مورخان نمی نویسن که چطور اقتصاد کشور رو تحت کنترل خودشون داشتند. و پیشواد چطور دست اونها رو از اقتصاد کوتاه کرد؟ میگن تاریخ رو فاتحان می نویسند. طبیعی کسی که فاتح شده حسابی روی پیروزی های خودش مانور می ده و از بدگویی علیه شکست خورده ها خسته نمیشه. کار مردم خیلی عجیبه. هر اعتقادی که داشته باشن با تمام وجودشون سعی می کنن به زور اون اعتقاد رو به دیگران تحمیل کنن. در طول تاریخ, تاریخ عقاید و باورهاشون تغییر میکنه. و با هر تغییر هم با ارزشترین چیزهایی که دارن رو برای اون باورها قربانی میکنن با اشاره رهبرانشون میجنگن و کشته میشن و در نهایت از کشته ها جز عدد و ارقام هیچ چیز دیگه حتی اسمی باقی نمیمونه این سربازها هستن که به قیمت جونشون بهای عظمت نام رهبران رو میپردازن اونها خودشون رو قربانی میکنن تا اسم رهبرانشون در تاریخ ثبت بشه خون های ریخته شده از یاد زخم‌ها التیام پیدا میکنن و خیلی زودی رهبر خوش زبون دیگه میاد. روی رو برای مردم فریاد میزنه و دوباره یه اده پشت سر اون راه میافتن و جونشون رو براش میدن. اینها چیزهایی که دنیا به من یاد داده. اما این حرفها دیگه کافیه، بذار داستان زندگی خودم در این کشور رو برات بگم. دست سرنوشت وقتی من رو به کشور شیلی آورد، کویا تصمیم گرفت دیگه با من مهربون بشه و به سریال رنج و عذاب من پایان بده. هنوز مدت زیادی در این کشور زندگی نکرده بودم که با مردی از اهل شیلی آشنا شدم که همسرش رو از دست داده بود و دو تا بچه کوچیک داشت. به من علاقه من شده بود و من هم عاشق اخلاق خوب و محبت هاش بودم. خیلی زود ازدواج کردیم و من شدم جای مادر بچه هاش. میتونم بگم اینجا خوشبخت بودم و زندگی آرومی داشتم. تنها چیزی که کم داشتم وجود تو بود و دوری از وطنم. سرنوشت من را از خانواده خودم دور کرد و در عوض خانواده‌ای به من داد که همه همه تلاشم رو برای خوشبختیش انجام دادم. و الان که دارم از این دنیا میرم اونها عاشقانه دورم رو گرفتن و جوری با من خداحافظی میکنن انگار مادر واقعیشون هستم. حتی یک روز هم احساس نکردم اینجا غریبم و هیچ وقت هم محبتم رو از اونها دریغ نکردم. من خوشبخت و شاد زندگی کردم هیلدا و خوشحال از این دنیا میرم من خوشبخت بودم چون سرنوشت این فرصت رو به من داد که یکی از دلایل موفقیت همسرم باشم لوئیس یکی از مهمترین کارخانه داران کشورش شد اون به من قول داد یک میلیون مارک از ارسیه من رو به وکیلم بده تا اون رو به دست تو برسونه شاید این هدیه بتونه جبرانی باشه برای این همه سال جدایی از تو و گریتا که به ما تحمیل شد میدونی هیلدا من همیشه خواب گریتا رو میبینم. اون رو دختر جوانی با همون زیبایی تو تصور میکنم که پر از شور زندگی هست. امیدوارم اون به همه رویاهاش برسه برخلاف ما, برخلاف ما که دنیا به همون اجازه نداد به رویاه همون برسیم و به خاطر شرایطی که خارج از اراده ما بود آرزو برای همیشه ته دلمون دفن شد. ته دلمون موند و در قلبمون دفن شد. ازت یه خواهشی دارم هیلدا. ازت میخوام سعی کنی با لیلی تماس بگیری. درسته که من تعهد دادم این کارو نکنم و تا زمان مرگم هم به قولم عمل میکنم. اما تو که تعهدی ندادی. اگه موفق شدی پیداش کنی بهش بگو که من با این که فقط چند روز باهاش بودم خیلی دوستش دارم. روزی نیست که به یادش نباشم. از طرف من به خاطر رها کردنش ازش آزخاری کن. بگو من رو ببخشه و برایش توضیح بده کاری که من اون موقع کردم بهترین کاری بود که میتونستم برایش انجام بدم. بگو من نمیخواستم اون بدبخت و فراری بشه و هر کسی تو وضعیت من بود بهترین تصمیمی که میتونست بگیره همین بود. اگه اون رو دیدی بهش بگو که من دو میلیون مارک برایش ارس گذاشتم. نه این پول و نه هیچ چیز دیگه نمیتونه جدایی و فراقی که سرنوشت برای زد رو جبران کنه. اما فکر میکنم بتونه هر چند خیلی جزئی آنچه که آرزو داشتم در تمام عمرم برای خوشبختی و سعادتش انجام بدم رو جبران کنم. دوستت دارم خواهر خوبم. امیدوارم من رو ببخشی که نتونستم اونطور که آرزو داشتم در زندگی کنارت باشم. به امید دیدار عزیزم. به امید روزی که بتونیم همدیگر رو در یک مکان و زمان بهتر ببینیم. دوستار تو لیلیان اشمید.